درس هفتم خواندن جغرافیای طبیعی ایران ایران با مساحت یک میلیون و ششصد و بیست و سه هزار هفتصد و هشتاد کیلومتر مربه هفدهمین کشور جهان از نظر وسعت است فلات ایران به دلیل واقع شدن بین سقاره از موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار است و چشماندازهای متنوعی دارد چون رشتهكوههای عظیم جنگلهای پهناور بیابانهای خشک، دشت حاصلخیز و دریاچه های بزرگ و کوچک در منطقه خلیج فارس که گرمترین جای ایران است حد گرمای دما به 52 درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد حالان که در شمار غرب کشور که منطقه سرد و کوهستانی است درجه حرارت هوا به چهل درجه سانتیگراد زیر صفر می رسد ارتفاع زمین در ساحل دریای مازندران 25 متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد است. در صورتی که در میان کوههای ایران بیش از یکصد قله با ارتفاع بالای 4000 متر وجود دارد. طبیعت و اقلیم گوناگون ایران باعث وجود داشتن گیاهان و جانوران متعددی بوده است. به عنوان مثال، تعداد گونههای پستانداران وحشی ایران تقریباً با تعداد کل گونههای پستاندار در قاره اروپا برابر است. فارسی آمیانه کتابی سیمین دانشور سرگذشته کوچه سیمین دانشور زاده 1921 در شیراز یکی از رمان نویسان برجسته ایران است. دانشور که به زبان انگلیسی مسلط است تحصیلات خود را در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران انجام رسانید و در همین دانشگاه در رشته تاریخ هنر مشغول به تدریس شد. دانشور مانند دیگر رومان نویسان نسل خود به مسائل اجتماعی مربوط به طبقه متوسط و طبقه پایین جامعه کنونی ایران می‌پردازد. دانشور در سال 1950 با جلال آل احمد منتقد اجتماعی و نویسنده معروف ماسر ازدواج کرد. سیمین دانشور که در دهه نود عمر خیش است همچنان در محافل ادبی تهران فعال است. چشمهایش را پاک کرد. دماغش را با گوشه چادر نمازش گرفت و باز گفت شب عروسیشون من لباس سیاه پوشیدم سر تا پا سیاه قلیون دست گرفتم و رفتم تو مجلس جمعیت چندون زیاد نبود خانم دستام همچین میلرزید که نزدیک بود قلیون رو ول کنم رو غالی پاهام چنون تا می شد که میگفتم همین الان که رو زمین پهن میشم هووی آتیش به جون گرفتم یعنی خانم عروس سفیدبخت پا شد و اومد قلیون رو از دستم گرفت من نزدیک خانم بزرگ وارفتم زنیکه بی اومد برا خودشیرینی دست انداخت گردنم ماچم کرد خون خونمو می میخورد، اما جرأت نداشتم دم بزنم از فردا او شد خانم من شدم کنیز مطبخی و آخر سر قده زبون بازی کرد تا آوارم کرد و حالا خانم جون هرچی فکرشو میکنم می باز همون خونه با هوو صد شرف داره به این بر بیا الهی خدا سایه هیچ مردی رو از سر بچه هاش کم نکنه نزدیک بود دختر نازنینم از دستم بره شده ماینه تبلازمیها تب از جونش نمیافته پسرم رو هم که دیدید مگه میتونم جلشو بگیرم همش میگه تقصیر تو است که پدرمون از خونه بیرونمون کرد اینجا هم کلاساش بچه باقبون و بچه و یار و بچه سپور هستند از اونا یاد میگیره نزدیکم بود نوکرتون سرشو از راه به در ببره. برده بودش براش بستلی نونی خریده بود دو چرخه کرایه کرده بود و اونو ترک خودش سوار کرده بود خداییش بود که مشتی سفر سپور دیده بودشون مشتی سفر مرد با خداییه اصلاً و ابدا رو خودش نیاورده بود فقط پسرمو گول زده بود گفته بود آقا اومده خونه به من نشسته بودم که دیدم پسرم بدو اومد خونه و پشت سرش مشتی سفر پسرم گفت پس کو آقام؟ مشتی سفر به من اشاره کرد گفتم آقای تو بود تو نبودی رفت سرتونو درد آوردم دیگه بس حالا خانم جون اگه این کارو بکنین انگار حج اکبر رفته باشین ایران را بهتر بشناسیم آتشکده چارتاقی در شهرستان نیاسر در نزدیکی کاشان این چارتاقی قسمتی از یک آتشکده است که گویا به وسیله اردشیر بابکان موسس سلسله ساسانی ساخته شد در دوره ساسانی اکثر ایرانیان زردشتی بودند و آتشکده متعددی در سراسر امپراتوری ساسانی به وسیله پادشاهان این سلسله بنا شد آتش جایگاه والایی در مراسم دینی زردشتی دارد و موبدان از آتش آتشکده مراقبت می کنند تا هرگز خاموش نشود